با من گفت پنهان کاردانی تیز هوش و از شما پنهان نشاید کرد سرمی سر فروش گفت آسان گیر بر خود کارها که از روی تب سخت می گردد جهان بر مردمان سخت کوش وانگه هم درداد جامی که از فروغش بر فلک زهره در رقص آمد و بربت زنان میگفت نوش با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام نیگرد زخمی رسد آیی چو چنگن در خروش تا نگردی آشنا زین پرده رمزی نشنوی گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش گوش کن پنده ای پسر و از بحر دنیا غم مخور گفتم ات چون در حدیثی گرتوانی داشت حوش در حریم عشق نتوان زد دم از گفت و شنید زن که جمله ازا چهشم باید بود و گوش بر بسات نفتدانان خودفروشی شرط نیست یا سخن دانسته گوه ای مرد آقل یا خموش ساغیا میده که رندیهای حافظ فهم کرد آصف صافت قرآن جرم بخش ای پوش